أشهد أن محمد الرسول دیگه به من لیاقت زندگی کردن با تو رو دارم پذار یه بار دیگه اعتماد تو و تو و دست بیارم اون وقت زخم زخن آخر رو یه بهتون میزنم که نفهمید از کجا خوردید که بفهمید زاهیده نشده کسی منو تحقیر کنه میشه خوبه امروز شما فقط تو سایت‌ها دنبال خونه ها و های خارج از تهران باشین. جاهای دیدنی تو اولویت باشه. جاهای بگ شمال، استان شیراز، کرمان، یزد، کردستان. هر کدومتون مسئول سه تا استان بشین. من کردام. کردستان و ماشا با من. خب عالیه. خان رو شما هم مازندران و گیلان و گلستان، گلستان. عالیه. تا آخر وقت دارید امروز حسابی سرچ کنید. اقلا از هر کدومتون آدرس 100 تا خونه و ویلا گفت حساب دقیق من پر شده می توانید سفرش ثبت کن باشه مامان. تو دیگه امکان داری دیگه شما را امتحان کنیم؟ می‌کنی؟ گفتم دیگه ما زیناسه. مگه من گفتم تو کیروشکو بیایش نداریم. کجای؟ کجای؟ کجای؟ کجای؟ کجای؟ کجای؟ کجای؟ کجای؟ کجای؟ کجای؟ اینجا؟ کجای؟ کجای؟ کجای؟ بقا اومدم بگم من آدم پستی نیستم تو اون روز هرچی از دهنت درمه به من گفتی پست نبودی که ما رو تعقیب بمیکردی این اسمش پستی نیست الان اجازه نمیدم یه موتوری تو رو از من بگیره من کیه تو هم که کسی من ازت بگیره تو بسید که واقع زده به سر تو اینجا چی میخوای؟ بگو کی که من جواب تو رو بدم. پرسیدم اینجا چی می‌خواد؟ تو اچراپتی نداره. برو شهر درست برو ساکو. رو این درست می‌کنی که پاورانو میفره وسط ما؟ درست صحبت کن. من کار نمیدونی با کی طرفی؟ چرا میدونم با کسی طرفم که رونا کوچک‌ترین علاقی بهش نداره. خلاص را تو بگی برو. من هیچ جایی نمیرم کلی حب کردم تو دوباره برگردم. الان برگشتم تا من نمی‌تونم جای منو بگیری. گفتم بس خوندی که. جای تو رو نمی‌گیرم. چون تو جایی نداری؟ تو واقعا فکر میکنی باباش منو ول میکنه میاد سراغ تو موتوری آسفه هاست؟ فراشت ولش که هستی؟ واقعا انتخابتی نه؟ لات که را میفتید و مردمو مردم مجبور شدم برم مادرم سرطان گرفته بود هزینای جرایی و درمانش خیلی زیاد بود همه هستونیستم اونو پاش گذاشته آورد نمیشه یه وقتای حتی پول ویزیت دکترم نداشتیم تحسفم من نمیدونستم به هیچ نگفته بودم فقط ساله در بود. من کسی رو دوست داشتم که بعض مالی خوبی داشت ولی با شرایطی که من داشتم نمیتونستم پا بذارم من هیچ وقت پول واسم مهم نمیده برای تو ممکنه ولی برای خانواده ها مهمه جیب خالی من کاری نمیتونستم بکنم اگه الان اینجا نشستم درم با طرف نیزنم اینه که به آینده این شرکت امیدوارم میدونم که زندگی ما از این رو به اون رو میکنم تو گفتی که احساس رو نمیگم و ساکتمو میذارم میرم باره اقباطوه. همیشه همی طریق ولی الان دیگه نمیخوام باشه. من توست دارم. خوام بمودم. ولی شهرت بیناس اگر منصورت... قومیارم... نیست اگر من سورت کامیارم... خیلی بیا همید. اگر کامیار نیست. روز که پدرتون آده بودش اینجا حرفتونو رو شنیدن نگرانه بابا نباش با من ازا یه چیزی باید بگم رونا من به لحاظ روحی یه جوری بازرگ شدم که اجازه نمیدم کسی خودم خانوادم وضیعتم رو تغییر کنه کسی قرار نیست این کارو بکنه من نمیذارم بله بالا بالا بالا بالا من گفتی بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا بالا مجید نمیتونه گیرم ایکارش بکن بابا من دفتر نیستم من آمدم مایی سر و کلی راه دارم تو ای تو من نگفتی باشه تو جدتر میخوای که باشه نمیفهمی دیگه حرف نمیفهمی دیگه باشه باشه آقا دارم راه میافتم دیگه خدا پس. مادرم مالش خوبه یه دقیقه صبر یه دقیقه تحمل کن یه همینه همینه آره آقا همینه یه دقیقه صبر باشه خلاص من بعد که کاریش اومده بعد برم الان نمیونی واسیتون مادرم نیست آقا منو با اینا درانداز اینا نمیشه آقا نمیتونی بگی برام میام مادرم مالش خوب نیست آقا نمیشه بار میمیر صادق بفهم مادرم خوب نیستی؟ که آقا صادق موسیقی عجید. نه 나와ش رو صدا. زوله‌ گفتو تر را گرفتیم. میگینه من انقدر عجله نمی‌کنم. شب مگه نمی‌خوای بری عروسی؟ زود الان. نه آخه <تصفح> شهریاره. باید ما هم از عقد دعوتیم. دیگه عصر باید اونجا باشیم. خوش بگذره. قربونت. حالا خب بیا تا یه جایی میرسونمت دیگه. برمیگردیم مائسرآ. نه من میرم خونه دیگه. بخوام برام اونجا دیر بشه. قلب دختره رو به دست آوردی؟ خیالت راحت شو. تو تو نخه عاشقی نیستی چی تو کلت امیر؟ خیلی چیزا کینه یه عمرو قلبم داره سنگینی میکنه میخوام ازش خلاصشان با این کینه آخر زندگی تو نابود میکنی ول کن دیگه بابا با احساس این دخترم انقدر بازی نکن مکن رو واقعا عاشق شدی؟ نه بابا امیر خدا رو خوش نمیاد بابات که دیگه زنده نمیشه گذشته ها هم گذشته ول کن بچسب این کارو و زندگی تو رو خدا نمیتونم اون کسی که این کارو با من کرد همه چیمو از من گرفت تو حقشون رو که کف دستش نمیشم من که از کاری تو سر در نمیارم حالی هر کاری میکنی برای من درد سر درست نکن زهر پوستمو میکنه شاش بفهم روز مغازر ببندم با افر چرا اینجا؟ های باقر نزده شما آقا مصفیش قرار کرد گذاشت رفصل نفهمیدم جنج سامان کجاست؟ حال مادهش بعد بود مغزی بره ولی من زنگ زدم دفتر همه چی رو بخوام جما مردی توضیح دادم حالا این افسری شده بدون همه هنگی رفته بود. آقا انگار مادرشو محرس شده بودن بعد دیگه چاریه نهانداشتن اگر میرفتن مشروع خیده شدکتی کارسی چی بود؟ نه آقای سعیدی پیز خوب شما نشو برام بفرس. من خودم چند به تماس کردن گفتم بیم باراتون رو ببرین قبول نکردن و اگه شما میخوای من خودم شما نشو برام بفرست پیشمان میگفت که از پدر مادرم نگهداری میکنی سخت نه؟ دیگه همسن و ساله من الان با هم شرایط مشابه داریم بفهمید پدر مادرم باید خوشحال باشن که دختری مثل تو داره ممنون چون سال پیری بیگه تو رو نداشتن معلوم نبود که سر نوشتشون به کجا میکشید منم خوشحالم که پیشمارو دارم چونه که اونو نداشتم نمیدونم تو تنهایی چی به سرم میومد هیچ کس برای آدم نمیمونه بابا به جز خانواده اگه مدیر همه اوتل های ایرانم که باشی یه وقت چش باز میکنی نگاه به خودت میدازی میبینی پیر شدی هیچکس هم نمونده توی تنهایی و تنهایی تنهای. حتی پدر مادرتم رفتم چی جایی هم یه همدل، یه همراه، یه مونس یه عشق میگیره من تو رو خیلی دوست داره حالا خواستم ببینم که تومون رو دوست داری سکوت تو با من حرف میزنه به نمیدون که من قدم اینجا طبی اگه بدونه پراحت میشه حالی برای ما اهمیتی نداره فقط دلم بخواد دختری کلم به خلوت دلت مراجعه کنی با شجاعت بهم بگی که تو همونو دوست داری شام اینجا پیش ما میمونی زود برم خونه. قبل از اینکه پشمان از خونه اونجا باشم. خب، خدا با. خوبی؟ <تصفيق> نکنه دوست سرمون میخوری؟ یه لحظه جزء بدهی. سرده. اینو با خودتون داشته باشی خیلی ممنون اگه اجازه بدین من خودم میبرم میرسونم به تو مزاهمت میشه نه اختیار داری. فقط چند لحظه با این جواب ناری نگران شدم زود اومدی خونه ستاره جان محبت کرد بنا رسو خیلیش میکنم اوان سرده ببشت خدافزو بسرمه خدا نگهت دار با اجازه ستاره من نمیتونم بباستم از چی اومده بود ببخشید بابامه دیگه طرفهای خوبی زد چیزایی بود که باید میشنیدم خدا. فسو. خدا خدافز فرمده بش اصلا درد میکن. مامان جون بیاید هم چای میریزم کارت که رو افتاده ها دیگه قصه چیل داری میخوری قصه نمیخورم از چرا یه قطع تو دیگه کم کم باید آمادش این که بریم خواسته روی من به فکر لباس باشم اون همه لباسه من گوشت شده خواسته نخور میدم ارزم برای دوست بایده ارزم که نمیتونم برم بدوست چرا؟ این که ارزم فکر میکرد آرش شیلی میگیره <تصفيق> راست میگه لباس منو خراب میکنه <تصفيق> <برد بجنسی>. <تصفيق> <تصفيق> بله با آرش هست برای شما. یاد با شما کار داری؟ مامان. ماشین چیه اینجا؟ مامان. مامان. من عاشق خونمی تو من شوخی نمی کنم حالا من شوهر سابق رونان نظریام آقا پسر شما جف با بریده من گفتم وریدم وسط شما من هیچو نمیدم با هیچ کسی ازدواج کنه اینو تو کله آقا پسرتون فرو تو تو اینجا چیکار میکنی؟ اگه نمیت سر کارت باشی دارم سکته میکنم آقا کامگار سکته باسه چی؟ دولار اومده پایین که. اون موقع گفتم بخر نخریدی منم همون موقع خریدم عزیزم یادت نیست پس چند ما قبل شده چی الان چیکار کنم دیگه نمیتونم خونه بخرم چرا؟ بخواهی میتونی؟ به شما خونه منو پس بده دلار تو بدی <تصفيق> زرنگی اون خونه الان قیمتش دو برابر بر شده میدونی دلارم کلی اومده پایین خب من چیکار کنم این راستو بچه علینی من مگه زورت کرده بودم خودت اومدی التماس کردی خونمو بردار جاش بدم دلار بده غیر از اینه منم به قیمت روز باید پول دادم الان خونه خونهمو میخوام من نمیفهمم اگر یه خونه اندازه پولت پیدا کنم، یه گیرم نمیارد سب کن دولار دوباره میره بالا اگه کجا هم همه میگن اگه نرفت چی اگه ما باید پایینتر چی من بدبخت میشه فیلن فقط صبر. آقا کام گیره بهت گفتم زنم نمیدونه من خونه رو فروختم خب الان که داری توی زندگی میکنی منم که نگفتم پاشی تو رێ اجاره من خواستم یه خونه بهتر بگیرم بعد بهش بگم. اگه نتونم خونه بخرم بیچاره میشم. الله کام یار. اون مردونه یک اون خونه منو برگردون دلار تو پس بگی. عزیزم من میگم باید صبر بکنی. نمیفهمی چی میگم؟ فرض کنیم دلار دوباره رفت بالا. بازم میخوای یه دبه کنی؟ اینکه نشد معامله کردن که حمد ببر. سلامات. گلو قر نمی خوردی؟ چیکار کنم؟ هیچی. فعلا فقط صبر کنم. باشه. خداحافظ. سلام ماما جا سلام سلام سلام سبتن سبتن درست درده ماما نمیره سبونه ره ماما تاریخ شما اگه نباید تو بخوری خب ناشتا که نمیشه بیا بریم صبونتو بخور دیشب هم گفتم به روح بابا میخواستم بهت بگم تایر خانم من حرفامو زدم دیگه هم حرفی برای گفتن ندارم شما فقط مخالفت کردی همین الان همینه خب آخه چرا گفتم که متلقه است عقد کرده بودن ازدواج نکردن چه فرقی میکنه اسمش روش بوده من حتی زیر یه نرفتم مادر من دهن مردم رو که نمیشه بس من به حرف مردم چیکار دارم؟ من کار دارم برای من مهمه من برای تون مهمم یا مردم؟ اون موقعی که ما هزار تا بدبختی و گرفتاری داشتیم این مردم کجا بودن؟ اون موقع که شما مریض بودی کدومشون اومدن به داده ما برسن یه حالی از همون بپرسن؟ کدوم مردم؟ من بعد سالها رو اونا رو پیدا کردم نمیخو کفتی دست خوشی روی دختری که شعر سابقش هنوز میخوادش شما الان مشکلت متألقه بودنش یا کامیا هر دو آرونا رو دوست دارم اونم هم همینطور حالا یه احمقی مثل کامیا رو اومده وسط شما میگی من کنار بکشم من اصلا با این ازدواج مخالفم تو از اولم به من نگفتی تو میدونستی که من مخالفت میکنم بهتر موافق باشی خانم شما به غیر از رونا با دختر دیگه ازدواج نمیکنی حال من اصلا برات مهم نیست این مهم نیست من که به خاطر شما همه کار کردم با جون و دلم شما هم به خاطر من یکم کتا چی میشه؟ این همه آدم هزارتو اشتباه میکنه رونا هم اشتباه کرده گناه آه. که نکرده من با این ازدواج موافق نیستم من تصمیان رو گرفتم عوضم نمیشه برو کفشانش رو بدزش، هوا سرده. ندارد. اون توگان تو نه من میل ندارم من مسلما مردهام میام. که. الان من نمیخوام خونه رنگ کنم. اه. من گفتم من دیگه نمیخوام اینجا زندگی کنم. چون دارو جگر بذاردارم وا میگیرم. یه خونی بزرگتر بهتر بود. من, من هم میخوام من همون خونه میخوام. و من دیگه میخوام فکر بچه باشن. تو اگه میخواستی بچه دار بشی نه وقت طلب نمی‌کردی که. کجا به دنیا میبردمش این چه خونه بابات اینا؟ مو همیشه اینجا بودین؟ خام بهتره که ما بچه نداریم. وگرنه معلومه با بچه تو اتاقم زندگی می‌کردم. گفتم که نه. اصلا صد تا پول من پیش توه. پول منو بده من خودم میرم یه جا رو میگیرم. کارام که می‌کنم اجارشون خودم میدم. پس این ساعتی یازده منتظرتم خونه میاد میریم خونه را میبینیم قرار داد و میبینیم خداحافظ خدا خدا خدا خدا خیلی نگرانم نمیکنه رامین کتا وگرنه ندا حرفی بیراب نمیزنه که رفته سراغ یه بیزینس جدید بشین یاده نرفته که دفعه پیش رامین چه زمینی خورد به خاطر همون کار خونه از دست داد زندگی رو شدیم تا آمد خودشو جمع جور کنه سر کله این پسره پیدا شد با این برنامهش بابا بذار عارف... حرفم تموم بشه بعدشم رامین اومد سراغ یه شغل جدید در آمدش از شرکت و کارخونه قد میشه حالا میخوان برن یه خونه اجاره کنن و هزار تا هزینه دیگه میفته رو دوشش رو چه گفتی که رامین وارد این کار بشه خب من نگفتم خودش خواست خودش از کجا فهمید من داشتم دنبال سرمایه گذار میگرشتم رامین گفت من هستم ندا میدونه نمیدونه خبه خودش بهش فکر فکر میکنی به فهمه چی میشه رامین که بچه نیست لابد فکر اینجاشو کرده دیگه اگه فکر میکرد کارش به اینجا نمیکشید نمیامد سراغ کاری که معلوم نیست چی هست و آخر آقابتش چی میشه حالا شما چرا انقدر بدینید شاید کارشون خوب در بیاد نه دیگه باقا کاره رو قبول ندارن چون گلن ماها رو قبول ندارن همه ایش داری تو ساکشون میزنی بهشون گیر میدی اینجوری که کاری درست نمیشه صغنتو بخوری سلام خیلی خوش شمایدید سلام من میوام من میرم دفتر خانم خواهش میکنم بفهمی خواهش خدمت شما هم گفتم این تحویل بودن هم تشکر کنم خواهش میکنم بیا بنداز گردنت چرا؟ بنداز نبا خودت دیگه من بازم دارم اینو ای تو بگوش نم اینکه تو استفادهش نمیکنی؟ بگیر دیگه باشه دست در نکن اینجوری مرحبا، تو بیشو؟ چقدر هم بد میاد؟ آقا؟ خبه؟ به بخش دیگه تو زحمت هم افتادی باور رسوندی؟ <تفق> یه هدیه طلب من شعالم گرفتی؟ <تفق> من نگرفتم، خود الان بهم دادیش خب، تو قبول کردی؟ باشه <تفق> دسته تو بیار بیار بیار دسته تویش من اینو فقط دارم <تفق> <تفق> از این اب <عب> نباتا <تصور> خیلیم. بریم بریم هجما چون یعنی من باور کنم تو فقط برای پس دادن شارگردن اومده بودی؟ تو به پدرت نگفته بودی من بری چی به جواب رد دادم نه؟ نه برای چی بهش بگم خسته این فکر میکنه مانع زندگی بزده باجه منه من به عرفه پدرت خیلی فکر کردم تا شما به روزای پیری فکر میکردم میدونی از این روزا چه صدایی به گوشم میرسه صدای یه دختر بچه که داره با مادر بزاگش میکنه من دلم میخواد وقتی پیر شدم نوه داشته باشم و دلم میخواد با کسی ازدواج کنم که تو جیبش همیشه از این آب نواتا داشته باشه هی میدونستم یه آب نواتا همچین خاصیتی دارن زودتر بدونده اگه میگرم فقط شوال دارم میدم برگردم اگه قرار بود آدم از همه چیز خبر داشته باشن که دیگه زندگی جذابیتی نداشت بابام چی؟ به بابام فکر کردی؟ آره پیشمون میبونه اینا بزنی یک جنامه دست باش آقا جواب و, و مرد دیگه میرسه باشه چاش فقط پذیرایی کردی نازم بله خیالتون باید بشه من من بازم کنم تلا. تلا. چیزی نشده؟ چیزی نشده؟ قشنگ معلومه یه چیزی شده دیگه. مامانت صحبت کرده بونم مخالفت کرده کامیا رو مده خونم ایوکی تیشم چیکار داشت اشفرک رو انداخت دیگه کدک کاری کردی خواست تلافی دیروز رو در بیاره چونه مامانتی نم آمدن رجب خونه ها حرف بزن میخوان تو رو ببینن چی میگه اقدام از این بزنید؟ اطفاقا من رو میخوام ببینم ات همین الان پدر من شما که خورده صفت داشت و چنانقا عجله میکنیم میریم دیگه آقا من غربونتون برای بلاییم ام باید به خانوادهش بگی یا نه؟ اینطوری که نمی‌شه. خیلی کار داشتم. حالا میری. آماده شمیدیم. امروز تا کار دارم. فردا با هم دیگه میریم. چشم. چشمم قربونتون برم دارید. چشم. خود میدم. باشو. خدا حافظ. آقا پجما. سلام. سلام. خوبی این؟ چه؟ کل دیمایی از بین رفته. خب چرا دی روز رفتی؟ من که گفتم بعد چند ناریز شده بود. مرتتو تازگیا بچت خیلی داره مریض میشه حواست هست؟ بچه‌ست آقا مگه دست منه. یه باد بهش می‌خوره میچاد. من که می‌دونن میفیسین می‌ری دوباره دلال بازی و دلار این حرفا. دلال بازی کدوم آقا؟ خیلی خوب، خیلی خوب. چه خسارتت. پایم ایلی. تقصیر این صیدیه. اگه بارو برده بود اینجوری نمیشد که. یه چیزی هم گفته به شما بگه چی؟ گفتش دیگه ازم خریدم کار. یعنی چی نمیشه که ما فروش فروشو به اون داشتیم سامان قراب کاری کرد قبل اون ما از این مشکلات داشتیم اون مادرش مریض شده رفته البته اگه راستشو گفته باشه تو چرا ما به اون باید بینیم استخوییش ندارم کلن زود غذابت میکنیم من نمیخوام بدوین باشم یا ذهن شما رو خراب کنم ها من این سامانه دو تا گوشی داره یا خاموشه یا سایلند. یه بار که رخ بودم زنگ خورد بهش گفتم بوده بوده اومد خاموشش کرد اگه رایگی به کفشش نیست چرا خاموش کرد قایم کرد گوشی رو ها آقا هم شد دلیل دو تا گوشی داشتم مشکوکه دیگه چرا قایم میکنم گوشی رو این سن کار باید این نور نیمی تونست و قسمت بزنید شما بیارم بیا بیا بیا سلام سنون چیز روز که دیروز کلی ماهی تلف شده گفتم بپرسم اگه مسئولیتش با منه جبران کنم. از ایشون باید بپرسی قاعدتاً یا از من باید بپرسی یا از مرتزه بخشت. مادر چه بهترن یکم فشارشون رفته بود بالا ولی الان خورمان بورش بیمارستان بیمارستان که نه داروهاشون رو دادن ردیف شده پار نداری نه مثلا کی پیش مادرته میدونی که فشار خطرناه که نه بود تنهاش خالم حالت بده خالت نمیتونستی بیاد که وسط کار نظر بری به ما خسارت بزنیم آقای شریفی من برای همین اومدم دیگه اومدم بپرسم که چقدر خسارت شده برین که پرداختش کنم پنج میلیون چش تقدیم. کنم فقط خسارت نیست که میخوای تقدیم کنیم آدی روز مشتری خوب و دست دادیم چیکا کنم آقای شریفی میخوای برام در خونه میخوای میخوے به دست و آقا دارم میگم مادرم مریض شده چرا حرف منو متوجه نمیشین شما صدا تا بیار پایین خرابکاری کردی طلبکار هم هستی آقا اشعری ببخشیدا میگم خب اگه میخواین از حقوقشون کم کنین چون فعلا تا وقتی من نگفتم نیاسر سرکار باش آقا نمیام سر کار سلام سلام چه کار می کنید؟ بلش کن بابا یک کار قطعه اه کار پیدا میشه من پیدا می کنم کار؟ یک کاری می دیگه نمیدونم الان همشه همونجوری فکر کرده دفتار می کنید چه اچبای میاد میام از شما اجازه میدیم موسیقی درون قله هروم روزگارم فقط یه دوز میتونه تو 4 سال میلیاردر بشی. چای دخترم من رونافی کلام تبیه. بابا برم نمیشه دختر انقدر دل داشته باشه. کلی سالو از دستم. تو shaman اینو من روزی به این وضعیت نیستم. از روی خوشی من سورسم. هرطور با منطق نداره. داشی ناداش من مادرتام. هر کاری دلش خواسته کرده من دیگه پاشوایی نمیشم. کارخونه و شرکتو بکیب اسم. من زحمتای شما رو به بادم. تو یه تاری که یشم شرق. که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 از راه رسید روی راپل نشست دکمه های قلب من دون دونش بل شدن گفتم این یه ماجز است خیله شد به آسمان همه ستاره ها دون دون گل شدن مرابونی ایش نزنی نی ای ایش این جورچینی ایش جورچینی باد بادکم یه جوری با میکرد اینکه تا هر جا خواستم بتونم پر بکشم یه جوری تشنم کرد اون که میشد دریا را مثل یه لیبان آب. یه نفس سر بکشم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 مهرابونی ایش نازنینی ای نی ای ایش آخرین تیکه ایش جورجینی ایش